بخش سرقت یک نفر باز هم به دیوار کوبیده بود این بار صدا از آپارتمان بالایی می آمد و این در حالی بود که ترلکوفسکی سر و صدای زیادی هم به راه نیانداخته بود ماجرا از این قرار بود که در آن شب به خصوص ترلکوفسکی یک راست از اداره به خانه رفته بود گرسنه نبود و از آنجایی که به لحاظ مالی هم اندکی در مزیقه بود تصمیم گرفت بعد از ظهرش را به مرتب کردن معدود لوازم خانهش بپردازد. با اینکه نزدیک به دو ماه میشد که در آپارتمان جدید مستقر شده بود، اما هنوز چیزی بیش از احتیاجات روزانهش را از چمدانهایش بیرون نیاورده بود. برای همین به محض ورود به خانه، هر دو چمدانش را باز کرد. اما بعد آنها را کنار گذاشت. و با نگاه کنجکا و دقت موشکافانه مهندسی که دست به کار یک پروژه عظیم باز یافته است، شروع کرد به وارسی اطرافش. از آنجایی که هوا هنوز روشن بود، تصمیم گرفت کمد بزرگی را که به یکی از دیوارهای اتاق تکیه داده بود، جا جابجا کند. خیلی مراقب بود که تا حد ممکن کمتر سر و صدا کند. قبلا هیچ وقت دست به چنین تغییراتی در آپارتمان نزده بود. تا پیش از این چیدمان اساسیهٔ آپارتمان به اندازه دیوارهایش غیر قابل تغییر به نظر رسیده بود البته پیش از این در شب بدفرجام مهمانی تخت خوابش را به اتاق جلوی منتقل کرده بود اما تخت خواب را به زحمت میشد یکی از اساسیه به حساب آورد پشت کمد به چیز عجیبی برخورد زیر لایههای نرم و نازکی از قبار که سطح دیوار را پوشانده بود یک سوراخ بود حفره کوچک در حدود یک و متری سطح زمین وقتی دقیق نگاه کرد متوجه شد که یک گلوله کوچک خاکستری رنگ پنبه داخل سوراخ است ترلکوفسکی که کنجکاویش با این معمای تازه تحریک شده بود مدادی برداشته با نوک آن گلوله پنبه را بیرون کشید چیز دیگری هم پاشده آن پنهان بود آنقدر با مداد داخل سوراخ را کاوید تا بالاخره شیء پنهان شده به بیرون لغزید و کف دستش افتاد. چیزی که اگر دقیقتر بگوییم یک دندان پیشین بود. خودش هم نمی‌دانست که چرا ناگهان به یاد حفره دهان سیمان شول در حالی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود افتاد. و تا این حد به لحاظ عاطفی مستأصل شد. هنوز هم توانست با وضوح تکان دهندهی جای خالی یک دندان پیشین را، همچون شکافی در میان ردیف دندان که مرگ از میان آن به داخل رخنه کرده بود، به خاطر بیاورد. همانطور که به دندان خیره شده بود و آن را کف دستش تکان می داد، سعی کرد بفهمد چرا سیماشول باید دندانش را توی سوراخ دیوار پنهان کند. افسانه یک ای را خیلی مبهم به یاد آورد که در آن دندانی که به این شکل مخفی شده باشد به طور اسرارآمیزی با هدیه‌ای برای کودک جایگزین می شود آیا مستجر قبلی هنوز هم به چنین خیال پردازی های کودکانه ای باور داشته یا شاید هم صرفا نمی خواسته تررکوفسکی می این یکی را کاملا درک کند از چیزی که به هر حال بخشی از وجودش بوده جدا شود یادش آمد در جایی خوانده بود مردی که یک دستش را در تصادف رانندگی از دست داده بود تصمیم داشته آن را در گورستان به خاک بسپارد اما مقامات مربوطه اجازه این کار را به اون نداده بودند و دست در نهایت سوزانده و به خاکستر تبدیل شده بود روزنامهها اشارهای به اینکه بر سر خاکستر آنچه آمده بود نکرده بودند آیا از بازگرداندن خاکستر دست به صاحبش خودداری کرده بودند و اگر چنین بوده به چه حقی؟ طبیعتاً وقتی یک دندان یا یک دست از بدن جدا شده باشد، دیگر عضوی از اعضای بدن به حساب نیاید. اما قضیه به این سادگی هم نبود. ترلکوفسکی از خودش پرسید: یک انسان دقیقا از چه زمانی دیگر آن آدمی که خودش فکر می‌کند هست یا دیگران فکر می‌کنند هست، نیست؟ فرض کنیم من یکی از دست‌هایم را از دست بدهم. بسیار خوب. در این صورت میگویم خودم و دستم. اگر هر دو دستم را از دست داده باشم میگویم خودم و دستهایم. اگر به جای دستها پاهایم را از دست داده باشم باز هم فرقی نمیکند. خودم و پاهایم. اگر به دلایلی لازم شود شکم، کبد یا کلیه هایم را در بیاورند، اگر اصلاً چنین چیزی ممکن باشد، باز هم می توانم بگویم خودم و اندام اما اگر سرم را از دست بدهم در آن صورت چه می توانم بگویم؟ خودم و بدنم یا خودم و سرم؟ سر که حتی عضوی از جنس دست و پانی است با چه منطقی عنوان من را از آن خود کرده؟ به این خاطر که حاوی مغز است؟ اما لارفا و کرمها و احتمالاً انواع دیگری از موجودات هم هستند که مغز ندارند. درباره چنین مخلوقاتی چه میتوان گفت؟ آیا در جایی مغزهایی هستند که بگویند خودم و کرمهایم؟ ترلکوفسکی ابتدا میخواست دندان را دور بیاندازد. اما در آخرین لحظه نظرش را تغییر داد و تنها به این بسنده کرد که گلوله پنبه را با یک پمبه نو و تمیز عوض کند. و همراه دندان به سر جایش برگرداند. اما حالا دیگر کنجکاویش تحریک شده بود. جست وجووی میلیمتری را در اتاق شروع کرد و البته خیلی زود پاداش تلاشش را گرفت. زیر یک کماد کوچک بسته نامه و یک کپ کتاب پیدا کرد که از زیادی گرد و قبار سیاه شده بودند. با یک تکه پارچه موقتی تمیزشان کرد. کتابها همگی رومان های تاریخی بودند و نامهها هم به نظر نمیرسید که اهمیت چندانی داشته باشند با این حال تصمیم گرفت سر فرصت آنها را بخواند کتابها و نامهها را داخل روزنامه باتل پیچید بعد از یک صندلی بالا رفت تا آنها را دور از چشم روی صقف كمت بگذارد درست در همین موقع بود که فاجعه اتفاق افتاد بسته از میان دستهایش لیز خورده وا صدای بلند روی زمین افتاد واکنش همسایه ها تقریبا آنی بود. هنوز از روی صندلی پایین نیامده بود که یک سری ضربه های خشب به سقف نواخته شدند. یعنی به این زودی ساعت از ده شب گذشته بود؟ به ساعتش نگاه کرد. ده دقیقه از ده گذشته بود. در حالی که از شدت خش میلرزید خودش را رو روی تخت انداخت. تصمیم گرفت باقیمانده شب را در همان حال بی حرکت بماند. تا لذت به دست آوردن بهانه جدیدی را برای آزار اذیت رساندن به او از همسایه ها دریخ کند یک نفر در زد حتما همسایه ها بودند ترلکوفسکی بر هول و حراسی که همچون موج سراسر وجودش را فرا گرفت لعنت فرستاد می توانه صدای قلب خودش را همچون انعکاسی از ضربه های در بشنود باید کاری می کرد. سیل دشنام هایی را که ناخواسته از دهانش بیرون می آمدند فرو خورد. پس باز هم باید خودش را تاجی می کرد. کارهایش را توضیح می داد و تنها برای زنده بودن و نفس کشیدن از آنها طلب بخشش می کرد. اگر می خواست از شر نفرتش خراص شود و نسبت به تمام چیزهایی که دربارش می گفتند بی باید به موجودی بزدل و بی جربوزه تبدیل می شود. باید چیزی شبیه به این می گفت. به من نگاه کنید، من ارزش خشم شما را ندارم من چیزی جز یک حیوان دست و پاچولفتی نیستم که نمیتواند جلوی نشانه های سر و صدای متلاشی شدنش را بگیرد پس نه وقتتان را با من تلف کنید و نه دستهایتان را با تنبیه من آلوده کنید فقط سعی کنید وجودم را تحمل کنید انتظار ندارم که دوستم داشته باشید میدانم که این غیر ممکن است چون موجود دوست داشتنی نیستم. اما لاغن میتوانید این لطف را در حقم بکنید که برای تغییر کردنم به کلی نادیدن بگیرید. کسی که پشت در بود باز هم در زد و ترلکوزکی رفت تا در را باز کند. مردی که پشت در ایستاده بود از همسایه نبود. او برای اینکه یکی از همسایه باشد نه به قدر کافی متکبر بود و نه از حق و حقوق خودش مطمئن به نظر میرسید. میشد برق تردید را در نگاهش دید. کاملا معلوم بود که انتظار دیدن ترلکوفسکی را نداشته است. با لکنت گفت: ای «اینجا آپارتمان مازرشول نیست؟» ترلکوفسکی سرش را به طور مبهم تکان داد. «چرا هست؟ یعنی بود. من مستأجر جدید هستم.» آه، پس اون از اینجا رفته ترلکفسکی نمیدانست چه بگوید، ظاهراً مرد چیزی از مرگ سیمان شول چه ارتباطی بین آن دو بوده، دوستی یا شاید عشق، آیا می بدون مقدمه موضوع خودکشی سیمان شول را با او در میان بگذارد؟ بالاخره گفت، بیایی تو، خوب نیز اینطور پشت در بیستید، غریبه با حالتی گیج و سرخورده زیر لب از ترلکوفسکی تشکر کرد. کاملا معلوم بود که پکر شده است. با شک و تردید گفت: امیدوارم اتفاقی براش نیفتاده باشه. ترلکوفسکی هم تقریبا به اندازه او درمانده بود. اگر مرد جیغ و داد به راه چی؟ همسایهها مسلما چنین فرصتی را به آسانی از دست نمیدادند. سرفه کرد تا گلویش را صاف کرده باشد. لطفا بفرمایید بنشینید موسیو بادار جورج بادار از ملاقاتتون خیلی خوشوختم موسیو بادار من ترلکوفسکی هستم متاسفانه باید بگم اتفاق ناگواری پیش آمده که خدای من سیمون تقریبا داشت داد میزد ترلکوفسکی گفت بعضیا میگن دوای بزرگترین غم ها سکوته و با خودش فکر کرد فقط امیدوارم حقیقت داشته باشد. بعد پرسید: شما میشناختیدش؟ مرد روی پاهایش است. میشناختم. منظور اینه که سیمون مرده؟ ترلکوفسکی با صدای آرامی گفت: خودکشی کرد. کمی بیشتر از دو ماه قبل. سیمون سیمون صدایش حالا به مراتب آرام تر شده بود. سیویل باریکش می لرزید و لبهایش به حالتی عصبی به هم قفر شده بودند. برآمدگی گلویش پشت یقه سفید پیراهنش بالا و پایین میرفت. رفت. تررکوفسکی گفت خودش از پنجره انداخت بیرون. خودتون میتونید ببینید. بدون آنکه متوجه باشد داشت کلمات سرایدار را تکرار می گرد. توی حیات با یک سخف شیشه ای در طبقه اول برخورد کرد البته بلافاصله نمرد اما آخه چرا چرا باید هم چی کاری بکنه هیچکس نمیدونه شما دوستش استلا رو میشناسید بادار سرش را به علامت منفی تکان داد حتی او که نزدیکترین دوستش هم بوده چیزی نمیدونه خیلی وحشتناکه نوشیدنی میل دارید؟ هنوز جملهاش را تمام نکرده بود که به یاد آورد در خانه چیزی برای نوشیدن ندارد. پیشنهاد کرد؟ بهتر یک سر به کافه بزنیم. من براتون نوشیدنی میخرم حالتونو جا میاره. ترلکوفسکی با اینکه وضع مالیاش خراب بود به دو دلیل ناچار شد چنین پیشنهادی بدهد. اول به خاطر وضعیت نگران کننده روحی و روانی مرد جوان و رنگ پریدگی کاملا آشکارش. بعد هم از ترس تقیان احساسات او که ممکن بود سبب بروز خشم همسایه ها شود. در کافه بادار برای ترکوفسکی تعریف کرد که از دوستان دوران کودکی سیمان بوده و همیشه پنهانی عاشق او بوده و حالا که به تازگی خدمت نظام را به پایان رسانده. تصمیم داشته تا با اعتراف عشقش پیش سیمون از او بخواهد که با هم ازدواج کنند بادار جوان کسل کننده و به طور غیرقابل درکی پیش پا افتاده بود اندوهش به وضوح صادقانه بود اما احساسش را در قالب کلماتی بیان می کرد که از رمانهای مبتزل و بازاری به آریه گرفته بود در نظر خودش عبارتهایی از پیش ای که استفاده می کرد بزرگ داشت و سپاس بیشتری را نسار متوفا می کردند تا چیزی که ممکن بود به فکر خودش برسد. به طور کنجکاوی برانگیزی در نادانیش رقتانگیز می نمود. دومین لیوان کنیا را که سرکشید از خودکشی حرف می زد. در حالی که بغز راه گلویش را گرفته بود با صدای خشداری گفت می پیش زنی باشم که آشقش هستم. زندگی دیگه ارزش ادامه دادن نداره. ترلکوفسکی با تقلید از شیوه سخن گفتن کلیشهای او گفت: نباید اینطور فکر کنید. شما جوون هستید و خیلی زود فراموش میکنید بادار جواب داد: هرکس. چنان به لیوانش خیره شده بود که انگار حاوی سم میکشنده است. ترلکوفسکی گفت: چیزی که تو دنیا زیاده زنه شاید نتوانن کاملا جاشو بگیرند اما اگر خلای ناشی از را در قلبتون پر میکنند باید با آدمهای جدید ملاقات کنید و خلاصه هرطور طور شده خودتون رو مشغول نگه دارید زمان همه چیز رو براه میکنه بادار تکرار کرد هرگز و باقی مانده ی کنیا کش رو هم پایین فرستاد. بعد از این کافه به سراغ کافه دیگری رفتند و بعد هم به یکی دیگر. بادار کاملا و درمانده بود و تلکفکی نمی نمیکرد او را تنها بگذارد. برای همین تمام طول شب را از یک بار به باری دیگر رفتند و در تمام این مدت ترلکوفسکی در مقابل پرسش های بی پایان و ناامیدانه بادار پاسخ های در هوای فراخور میداد. و بالاخره با بالا آمدن خورشید، مطمئن بود یک خودکشی حتمی را به تعویق انداخته است. بادار با بیمیلی قول داد پیش از هر تصمیم جدی، حداقل یک ماه دیگر به زندگی ادامه دهد. در راه به خانه ترلکوفسکی شروع کرد به آواز خواندن. خسته و بیرمغ بود و اندکی مست. اما خلقش عالی بود. جمله پردازی های ساختگی مکالمهی که از سرگزرانده بود، او را حال آورده بود. همه چیز به طور مطبوعی تصنعی و خیالی بود. تنها واقعیت بود که ترلکوفسکی همیشه خودش را در برابر آن بی دفاع و بدون آمادگی احساس می کرد. همزمان با رسیدن ترلکوفسکی به خانه، درهای کافی که آن طرف خیابان بود باز شدند. ترلکوفسکی برای خوردن صبحانه داخل شد. پیش خدمت از ترلکوفسکی پرسید شما اون طرف خیابون زندگی می کنید؟ سرش را به علامت تعیید تکان داد. بله، البته مدت زیادی نیست که اینجا هستم. آپارتمان همون دختری رو گرفتید که خودکشی کرد؟ بله، شما می البته که میشناختم هر روز صبح به اینجا میومد. اومد. هیچ وقت حتی منتظر سفارشش نمیموندم موندم. بلافاسر نانه به و شکلات همیشگیشو براش آوردم. قهوه نمیخورد. میگفت برای اعصابش خوب نیست. یک بار به من گفت اگه صبح قهوه بخوره تا دو روز نمیتونه بخوابه. ترلکوفسکی به نشانه ای موافقت گفت. همینطوره قهوه آدم و عصبی میکنه. اما من اونقدر بهش عادت کردم که دیگه نمیتونم روزما بدون قهوه شروع کنم. پیشخدمت با خودپسندی گفت. لابد همینطوره چون به هر حال به نظر نمیرسه مشکلی داشته باشید. اما روزی که حالتون خراب شد، خودتون دست از قهوه خوردن برمیدارید. ترالکوفسکی گفت: شاید. مطمئن باشید که همینطوره. البته بعضی ها به خاطر کبدشون نمی شکلات رو هضم کنن، اما مادماز آلشول اینطور نبود. از هر نظر در سلامت کامل بود. ترالکوفسکی گفت: بله ز... ظاهرا که اینطوره با این حال خیلی وحشتناکه زنی با اون همه انرژی و با اون سن و سال کم بدون هیچ توضیحی خودشو بکشه احتمالا برای هیچو پوچ یک موج افسردگی یا احساس غریبی که قبلا داشتید و بعد بوم تسلیم میشید براتون شکلات بیارم؟ ترلکوفسکی چیزی نگفت داشت به مستجر قبلی فکر می کرد شکلات را سرکشید، کشید بدون اینکه متوجه شود چیزی که نوشیده قهوه نبوده صورت حسابش را پرداخت کرد و از کافه بیرون آمد به پاگرد طبقه سوم که رسید دید در آپارتمانش باز است ابروهایش به علامت تعجب در هم کشیده شدند فکر کرد عجیبه مطمئنم که در بسته بودم در را به داخل هال داد و وارد آپارتمان شد. نور خاکستری و ضعیف صبحگاهی از میان پردههای تنها پنجره آپارتمان به داخل نفوذ کرده بود. نگران نبود، اما بی اندازه متعجب بود. اول به همسایهها شک کرد، بعد به موسی و زی. آخر سر هم به فکر سایمون اسکوپ افتاد. آیا ممکن بود آنها بالاخره دست به عملی کردن یکی از ابلهانه ابلهانشان زده باشند؟ پرده ها رو کنار زد و دورو بر اتاق را از نظر گذراند در کمد کاملا باز بود و محتویاتش در اطراف تخت پخش و پلا شده بود یک نفر تمام دار و ندارش را زیر و رو کرده بود اولین چیزی که متوجه ناپدید شدنش شد رادیو بود بعد هم خیلی زود متوجه شد که هر دو چمدانش به سرقت رفتند او دیگر هیچ نشانی از گذشتهش نداشت نه اینکه چیز گران بهایی در چمدانهایش داشته باشد فقط یک دوربین ارزان قیمت یک جفت و چند جلد کتاب بود اما در عین حال اکس های دوران کودکیش همراه با عکسهایی از والدینش و دخترهایی که در نوجوانی عاشقشان بود به علاوه چند نامه و مجموعه از هایی که به دورترین دوره‌های زندگیش تعلق داشتند در ها بود یادشان که افتاد اشک در چشمانش زد یک لنگه از کفش‌هایش را از پادر آورد و به طرف دیوار اتاق پرتاب کرد. این حرکت خشمگینانه تا حدی موجب تسلی خاطرش شد. بلافاصله یک نفر با مشت چند ضربه به دیوار کوبید. ترلکوفسکی فریاد زد. خیلی خوب. خودم می دونم دارم سرا صدا می کنم. اما شما هم باید وقتی داشتن اینجا رو زیر و رو می کردن. این کار رو می کردید. نه حالا؟ سعی کرد خودش را آرام کند به هر حال تقصیر اونها نیست و علاوه از کجا معلوم همون موقع هم به دیوار نکوبیده باشند چه کاری از دستش ساخته بود؟ شکایت کند؟ بله همین بود باید به اداره پلیس میرفت و کتبا شکایت می کرد. نگاهی به ساعتش انداخت ساعت هفت صبح بود اداره پلیس الان باز بود؟ بهترین کار این بود که خودش شخصا برود و ببیند. لنگ کفشش را دوباره به پا کرد و از پله پایین رفت. روی پاگرد گرد طبقه اول به موسیو زی برخورد. صاحبخانه خان خشبینانه گفت شما آسایش و از ساکنین این ساختمون سلب کردید موسیو ترکوفسکی. این وزنه میتونه بیش از این ادامه پیدا کنه. تمام همسایه ها ازتون شاکی هستند. ترکوفسکی گفت ببخشید موسیوزی، نکنه دارید درباره دیشب حرف میزنید. اعتماد به نفس ترلکوفسکی موسیوزی را متعجب سخت. سردر نمی چرا عصبانیتش تأثیری بر مستعجرش ندارد و همین او را کفری کرده بود. گفت، البته که دارم درباره دیشب حرف میزنم، شما باز هم سر و صدای وحشتناکی راه انداختید. من تصور میکردم این مسئله رو کاملا روشن کردم که اگر به این رفتارتون ادامه بدید دیگه نمیتونید توی خونه بمونید اما انگار چاره‌ای جزین برام باقی نمونده که دست به اقدامات جدی بزنم ترلکوفسکی حرف او را قطع کرد خونه ای منو دزد زده موسیوسی من همین چند دقیقه پیش از راه رسیدم و دیدم در آپارتمانم بازه الانم داشتم به اداره پلیس میرفتم تا موضوع دزدی رو گزارش بدم قیافه صاحبخانه کاملا عوض شد ظاهر ابوس و سرزنش جایش را به قیافه داد که به طور قااطعانه تهدید کننده بود صاحبخانه فریاد زد منظور تو چیه؟ خونه ما یک محل و اگه میخواد با سر هم کردن این داستانها خودتون خودتونو تبره کنید؟ حالا دیگر ترلکوفسکی هم داد میزد. هر چی گفتم عین حقیقته. نمیفهمم چرا به حرفهای من توجه نمی کنید. به زور وارد آپارتمان من شدند و تمام هستی منو به سرقت بردند. موسیوزی چند لحظه سکوت کرد. بعد به آرامی گفت: من متوجه حرفهای شما هستم و خیلی هم از این بابت متاسفم. اما نمیفهمم چرا میخواهید به پلیس مراجعه کنید؟ این نوبت ترلکوفسکی بود که تعجب کنند. چرا؟ برای اینکه بهشون بگم چه اتفاقی افتاده. تا از وسایل دزدیده شده صورت جلسه تهیه کنند که اگه زمانی دوزها دستگیر شدند معلوم بشه چه چیزهایی مال منه. قیافه موسی و زیباس هم تغییر کرد. حالا ظاهری نیکخواه و پدرانه به خود گرفته بود. ببینید موسی و ترلکوفسکی اینجا یک خونه آبرومنده و مستاجرهای من هم همه انسانهای نجیبی هستند ترلکوفسکی گفت موضوع این نیست که اجازه بدید رو تمام کنم شما چه مردمو میشه ناسید. اگه پای پلیس به اینجا باز بشه خدا میدونه مردم چه فکرهایی میکنند و چه حرفهایی میزنند شما خودتون میدونید که من در انتخاب مستاجرام چه وسواسی به خرج میدم در مورد خود شما تنها زمانی به اجاره دادن آپارتمان راضی شدم که از درستکاری و صداقت شما مطمئن شدم اگه اینطور نبود حتی با یک میلیون فرانک هم امکان نداشت آپارتمان رو به شما بدم حالا اگه شما به پلیس مراجعه کنید، اونها هم ماموراشون رو به اینجا میفرستند و انواع و اقسام سوالات بی حاصل رو از همه میپرسند. و این میتونه تاثیر مخربی در عقیده بقیه مستجرها داشته باشه. البته من اینو فقط به خاطر خودم نمیگم، بلکه به خاطر خود شما هم است. نمی نمیتوانست حیرت و بهت خود را پنهان کند. به خاطر من؟ مگه من چیکار کردم؟ صاحبخانه و لحن دلجی کننده ای گفت: میدونم که ممکنه به نظر شما نامعقول برسه، اما کسی که یک بار به هر دلیلی سر و کارش به پلیس بیفته، برای همیشه مورد سوء زن قرار میگیره. در این مورد میدونم کاملا حق با شماست، اما دیگران اینو نمیدونند. و خدا میدونه چه چی چیزهایی ممکنه به شما نسبت بدن و همینطور به من حرفم رو باور کنید من میدونم چی میگم رئیس پلیس از آشنایان منه من خودم در این باره با او صحبت میکنم خودش میدونه که باید چه کاری بکنه اینطوری هیچ کس نمیتونه شما رو به خاطر کوتاهی در انجام وظایفتون به عنوان یک شهروند سرزنش کنه البته. ما هم جلوی پخش هر شایه ای رو در این اطراف گرفته ایم ترلکفسی حیرت زده تر از آن بود که اعتراض کند موسیوزی اضافه کرد آه در ضمن مستجر قبلی همیشه بعد از ساعت ده دمپایی ابری میپوشید. هم برای خودش راحت تر بود و هم برای اونهایی که طبقه پایین زندگی میکردند.